بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلات و سلام علی على رسول الله صلی اللہ علیه و سلم درست امروز با شما درباره غیب و شناسی است یکی از مسائل که در بینی اسلامی مطرح میشه و یکی از موضوعات مهم اعتقادی است موضوع غیب است مثلا سوال مطرح میشه که آیا ملائکه ها غیب مشناختن سوال دیگه آیا پیغمبر ها غیب میفامن سوال سوم آیا جنها غیب هم می خب اگر کسی ادعای غیب بکنن چی حکم داره؟ و اگر کسی پیش کسایی که اونا مثلا فالبین هستن یا جادوگر هستن و ادعای غیب میکنن پیش از اینا میرن؟ حکم از اینا است؟ یعنی موضوعات است که ما شما در دست امروزی میخانیم موضوع اولیه است که مثلا فرق بین غیب و غایب آله مثلا ما شما وقتی که گپ میزنیم در هر زبان میگن که شخص اول، شخص دوم و شخص سوم، فرست پرسن، سکند پرسن یا ترد پرسن، متکلم، مخاطب و غائب در زبان عربی همین شخص سوم غائب میگن. بنابراین وقتی که ما شما درباره یک شخصی که در مجلس ما گپ میزنیم این نفر غایب است. در مسئله غایب شاید مثلا در پشت دیوال کسی باشه ما شما او را نبینه. اما دیگر او را می فهمن. اما وقتی که ما با شما می سر غیب گپ می و در قرآن از این شان موضوع غیب مطرح میشه. شه و آیات قرآنی را می که درباره باره غیب صحبت می این چه پاس مسئله غیب است که مربوط خدای از زبا میشه. یعنی شاید بعضی کسا باید که چیز است که مثلا ما اوتو ولی یک کسی دیگر او را این غیب نیست به اصابه ما و شما او را غایب میگیم اما وقتی که در قرآن از این و در احادیث و در بحث های اعتقادی صحبت میشن منظورش اونمو غیب است که مخصوص خدای عزواجل است چیزی است که او را خداوند متعال در علم خود بر خود ذخیره کرده و او را انسان ها نمیفامن اینال اینمی غیبه که مخصوص خداوند متعال است آیا ایر ملایکه ها میفامن آئیر جنها پیغمبر ها میفامن آئیر جنها میفامن آئیر یک انسان دیگه میتونه بفهمه. خب اگر میفامن چی دلیل دارن اگر نمیفامن چی دلیل داره و اگر کس ادعای غیب میکنه چی حکم داره و اگر کس پشونم و کسی که میگه من غیب میفهم پیش از اون میره از مسائل غیبی پرسان میکنم یک افاز زیاد هست در دنیا اینال درباره هر کدام از ما دلیل د اولش که مثلا آیا ملائکه ها غیب میفهمند ما این از کجا بفهمیم شاهده مثلا یک نفر بخیزه بگه اولا ما تصور میکنم که شاید ملائکه ها بنده های مقرب هستند خوب هستند پیش خداوند نزدیک هستند غیب رو ما میگیم درست است این اثر تو است اما ما وقتی که در بحث اعتقادی صحبت میکنیم می مستقیما در قرآن از نشان پرسان میکنیم که آیا ملائکه ها غیب میفهمند صفحات قران باز میکنیم در قرآن بینیم که خداوند متعال جل جل هو قصه حضرت آدم علیه سلام ها میکنه امره ملایکه ها خداوند چی میگه؟ میگه و علم آدم الاسماع كلها خداوند متعال عضرت آدم علیه السلام ها نام های زیادی رو تعلیم داد وقتی که نام ها را کل شب آدم علیه السلام تعلیم داد ثم عرضهم هم علی الملائکه آمد برای ملائکه ها گفت که ام بی به بی ها هاولای ای؟ این کنتم صادقین شما این نامهایی را که من برای آدم علی سلام یاد دادیم بگوینی را قالو لا علم لنا الا ما علمتنا گفتن خدای پاکیس مرترا ما علم نداریم مگم چیزی که تو بر ما یاد دادی باز آخر خدامان میگه که علم عقل لكم آیه ما بر نگفتم که اینی اعلم غیب السماوات و الارض هستم که عالم غیب آسمان ها و زمین هستم این از این قصه چیستم بحث میشه وقتی که ما قرآن عظیم شان می یک تعداد قصه هستم که قصه مثل یک قصه قرآنی مثل یک قصه عادی دیگه ورخونده میره خلاص میگه که ملائکوتو گفتن چطور است دربار که چی گفت و فلسفه میگه فلان میگه ما تو یک مسلمان و وقتی ما یک قصره خوانیم از این قسم معلوم میشن که در اینجا یک بحث, بحث اعتقادی است که ملائکه ها غیبت نمیفهمیدند اگر ملائکه ها غیبت میفهمیدند پس با چی میکردند این آماره؟ را میگفتند ها اگر غیبت میفهمیدند با چی میکردن؟ این آماره یکی یکی؟ یک میگفتند و میگفتند خدای این بر آدم السلام فلانی نام یاد دادی اونون نام فلانی بود یعنی فلانی بود خلاص میگفتن ما فامیدیم. چون این مسائل بود که خداوند تنها برای آدم علیه السلام فهمانده بود ازی معلوم میشه که ملایکه ها غیب اگر چیز را خداوند مطال جل جلو مطابق وزیفی و ملایکه داره برش بفهمانه خداوند برش فهمانده میگه غیر زو نمیفامن این عقیده است. آیا پیغمبر ها غیبه می فامیدن؟ خب در اینجا هم شاید کسایی باشن که تو به حساب نظر خود باید که به نظر من پیغمبر ها باید غیبه بفامن؟ اما ما میبکنیم نه در مسائل اعتقادی نظر ما و نظر تو نیست در مسائل اعتقادی باید ما چی کنیم؟ به قرآن از دیموشان رجوع بکنیم اینال قرآن از دیموشان برای ما چی میگه؟ قرآن بر ما درباره پیغمبرا یک یک یک یک یک, یک تقسیم و توزیع میکنن و بر ما بیان میکنن مثلا اینجا آیت شریف است که من اینجا کتابت نقل کردیم یک آیه شریف است که خداوند متعال به حضرت محمد صلی الله علیه و سلام چی میگه برای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه که قل بگو ای پیغمبر لا اقول لكم اندی خزائن الله برشان بگو که من نمیگم که پیش من خزانه های خداوند است ولا اعلم الغيبا و ایره هم نمیگم که من غیب میفهمم ولا اقول لكم اني ملك و برتان من نمیگم که من ملائکه هستم ایرو خداوند برای پیغمبر سلام بگم این ان تطبی و الا ما یوحى الی میگم من متوعد نمیکنم مگم چیزی که خداوند بر من وحی میکنه و در آیه شریف دیگه خود پیغمبر صلوات میگه که این در یه شریف اینجا هم یوم یجمه الله الرسول در روزی که خداوند بگه پیغمبر را جمع میکنه فیقول ما ذا عجبتم مگه چه آوردین قالوا لا علم لنا اینکه انت علام الغیوب خدای ما علم نداریم در شریف دیگه پیغمبر سلام سلامت میکنه او میگه که خدایا اگر خود پیغمت سمیه که اگر ما غیبه من غیبه می فهمیدم لستک همه بسیار مسائل غیبی رو برطان بیان میکردم قصه هایی که در قرآن خوانده میشه ما چی قصه, مص... مص... قصه های قرآنی درس عقیده بگیریم مثلا در یک قسمت از در قصه قرآنی که قصه ابراهیم علیه السلام خداوند مطالب برما بیان میکنه ابراهیم علیه السلام میگه هل که حدیث و ضایف ابراهیم المکرمین آیا برای شما قصه میوانای ابراهیم علیه السلام اومده ابراهیم علیه السلام چی میگفت میگه پی... قصه چی است میگه که ابراهیم علیه السلام پیشش چند نفر جوان آمده، میهمان شدن ابراهیم علیه السلام که تعداد جوانا را دید عاجل رفت گوساله داشت او گوساله خود را ذبح کرد برای اینکه خزات یک عورت پیششون مان اینا وقتی که غذا رو پیشوری از میاندیا کلشان فکر کردن که اوه ابراهیم علیه السلام دید که نمیخورن قال الا تاكلون ایبراهیم علیه السلام گفت چرا نمیخورید غذا ما تان غذا تیه کردیم الا تاكلون چرا غذا رو نمیخورین من منهم خیفه میگه ابراهیم علیه السلام از پیشسیاد ترسید که چاوس مردم هستن های ما هستن اومدن پیش من آلمبر جان غذا رو کردیم میگیم بگو بخور یا میگه ابراهیم علیه السلام حتی اینجا چی کرد؟ فا اوجه سمن هم خیفه ابراهیم علیه السلام کم کم ترسید و درسو. در سو در سرخ هم خلق دیم ولی نخروی, نخروی در اینجا میگه و بشروهو بغلام علیم و به بغلام علیم یا برش بشارت دادن که ابراهیم علیه السلام ما انسان نیستیم ما در لباس انسان ها آمدیم ما ملائکه ها هستیم با ز ابراهیم السلام برشان باز برای ابراهیم علیه السلام بشارت میده که خداوند تورا یک فرزند میده قال خد خاطبكم ایه المرسلون ابراهیم علیه السلام از ایشون پرسان میکنه شما چرا آمدین؟ چرا آمدین؟ اینجا ابراهیم علیه السلام میگه ان ارسلنا الى قوم مجرمین ما اومدی اینجا قوم مجرم هستن می که به یک قوم مجرم که خداوند به ما رو روان کرده که ما برای اینا جزابتی این حال از این قصه چیز تنبات میشه؟ یک انسان مسلمان قرآن شناس وقتی که این قصه رو میخونه اینجا اگر از تو سو سوال شده که آیا ابراهیم علیه السلام غیبه میفامید؟ اگر مثلا ابراهیم علیه السلام غیبه میفامید خیلی چیز رو داشت که میرفت گوسالی خدا زبه همه کرد؟ آیا یک پیغمبر خدا بفهمم که اینمی ملایکه از غزان همه چرا گوسالی خدا ناقی زبه بکنه؟ اصلا چه قصتی استفاده می کنی؟ ابراهیم علیه السلام غیبت میفهمید؟ ها میفهمید. ابراهیم علیه السلام سوالش اون کرد گفت قالوا ما خطبكم بکنم هل مرسلون؟ شما برای چی آمدین؟ اگر ابراهیم علیه السلام غیبت میفهمید چرا سوال می کرد؟ خلاص اینا ملائکه هستن، ذرات نبود که گوساله خدا هم ذبح بکنن و ضرر نبود که اینا سوال هم بکنه. ما غیبت میفهمم. اینها باز برای گفتن قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمی. آغاز سپاری بیستی اکم خالف هم آخد بکم سپاری بیسته, بیسته افتوم هست دخشید. آغاز سپاری بیسته افتوم و ختم سپاری بیسته ششان قصه ابراهیم علیه السلام از کتید این ملائکه ها بعضی کسایی قصر رو میخونه قصر او تو چی قصر میخونه به شکل ایسا ساتیج یه که ابراهیم علیه السلام که یک بود که رفت گوساله را حلال گو کرد باز یک مفصل دیگه مشهور است که این گوساله رنگش زرد بود که شاخ‌هایش تلایی بود که مگر قرآن خود از این نازل نشده تو عقیدت جور کن قرآن دیده دیدی برادرانه چون سوره قصه وای دیدی قصینه تو باید خفل كده سنگک که چه که پیامبران به غیب باند نمی‌پیدل که که پیغمبر به غیبانی نپویگیم نو بغیر لپیغمبر آیه بل سود به غیبانی پویگیسی نکیگی کنن اینال در این وقتی که مای ما قصر را میخوریم اما ام مردم که احساساتی صحبت میکنن، اینکه کتاب تفسیر یکی دیگر بینید چهار هزار صفحه تفسیر نشکرد خوب که میخونی چیگه پس آه ابراهیم علیسی باز مگی خب اگر سوال کنیم که گوادی چند ساله بود اگر سوالکنین همین گزاری که علال کرد چه رنگ داشت؟ این دا چه قسم علال کرد چند نفر بودن این علیک ها چه قسم مردم بودن آیا یا کامدن از کدام درآدم در معار خانه شاناندشی یا سرصفف اندشی یا و باغشاندهشی یاتنور خانه شانده کل وقت و خدی تا مصرف کردن دی گپای بیهوده. اما یک مسلمان قیقی میکرد نه من وقتی که ای ق سر رو می که از این قصه یک درس عقیده باید من بگیرم و اون درس عقیده چیست درس عقیده ای است که ابراهیم علیه سلام پیغمبر خدا بود بنده خدا بود چیزی که علم خداوند است او را خدا میفهمه و چیزی که مخلوق است مخلوق میفهمه اگر برش وحی میشد که ای ابراهیم این حال ها پیش تو میعید خلاص میفهمید اما وقتی که برش گفته نشده نمیفهمم. خود قرآن صراحتن میگه که ابراهیم علیه السلام حالا تو وقتی که یک سوال بپرمی، بپرمی که فلانی فلانیت فلانیت واسه فلانی، می از من پرسان میکنی که یا کیست؟ میگه نه من خالصا نمیفهمم. وا پیغمبر کار بیهودان هم میکنه. آیا صحابه پیغمبر غیبت میفهمیدن به هزارها دلیل است. هر قصسی قرآنی را که بخوانی مثلا حالا شما تمام روز در افغانستان فیلم یوسف علیه السلام میبینیم. میبینیم نه؟ خوب می با... هم... اما عقل خود رو در کار نمی پرتیز. با وجودی که نمی نفر خودش خوب همین فیلم هم می بینه همی قرآن هم می خواهد همی آیت هم می خواهد لیکن نمی اگر یک که عقل خود در کار میکرد کرد آلوان از خود یک کس سوال کرد دوستا چون قوته سنگی داره به قوته سنگی دیش قوته سنگی قوته سنگی والا بایدار. خواهش میکنم همین شراط صرف جمعا دی نبانی دیدی؟ مرکز پخش مرنش دای سری های سنو میره میگی؟ بله ولی ولی ها همین سرک اول دستشاب مرکز کتاب پروشیر کابول تشکر بیدارش بسات بازدم و بس سرک اول پایم میشوست خب بچی با مپایم میکنم آقا جا بله انتشارات شرط سید جمال الدین اولین و بزرگترین مرکز پخش نشریه سی دی دی وی دی های کتاب و مجالات اسلامی در شهر کابل می باشه. الا اما عقل خود در <تصفح> کار نمیپاستید. با وجودی که نمی نفر خودش خوب معنی فیلم ها میبینه، معنی قرآن هم میخونه، معنی آیات هم میخونه، لکه نمیخواد بفهمه. اگر یکم که عقل خود کار میکرد، اول مثلا از خود سوال کنه. تو سوچو وقتی که یوسف علیه السلام یوسف علیه, علیه, علیه, علیه السلام در چه چاه انداخت بهش انداخت انداخت یعقوب علیه السلام پیغمبر بود نبود بود پیغمبر بود یعقوب علیه سلام غیبت میفهمید نه نه اگر میفهمید یوسف علیه السلام در چه فهمید که در چه انداختش نه نفهمید نه فهمید نه ها فهمید نرسد شد این چی شد آ تو چشمش نابینا شد نفهمید اگه غیبت میفهمید میفهمم کنه بچم ازنده از کجا از مصر و ودا مثل پاچه به عین به وزارت رسید و این چه پدارش باشه چی است چی چشم بفرمایید چی شو نابینا شده بس از این قسم واجی میفهمیم که یعقوب علیه السلام غیبه نمیفهمید نمیفهمید برادر اگر غیبه میفهمید میرا بر مردم رو میگوه بچاییم شما یاره چی کردین ده دا چان داختی علی دا لوکس یقه تو گوری دتصامان که یوسف علیه السلام ده و اومدن و برش گفتن و دروغ گفتن که ما ایر عکل حزب گفتن چی خوردش گر خورده و, و علیه س... یعقوب علیه سلام ایران مان گریه کرد بلاخره سالها در فراق بچه خود در حال که بچه چی بود زنده بود پس این پیغمبر خدا یعقوب علیه سلام پیغمبر بود نبود بود چرا که اگه کس منکر شد و کافر میشه وقتی که پیغمبر بود غیبه نمیفهمید اونجا در چه چا بچهش هست نمیم چ چطور باز میتونه که از آسمان ها و از زمین از کل خی بفم اگر خ با قرآن درستی قایی رو میخونیم لاکن از قصه های س فرق بین قصص های قرآن و قصای های مادرکلان ها چی؟ میگه ق های مادرکان ها برای خ دادن است مادرکان عواسیق و قه میکنن تا کره چی بره؟ خو بر اما قصای های قرآن برای بیدار کردن است که تو که خاستی چی شد؟ باشه بخوننده قل قران رو هر حامی خاهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن امروز بیشتری کسایی که کافر میشن بیدین میشن از راه دین خارج میشن چرا به خاطر ازی که کتاب فلسفه را میخوان منطق میخوان علم کلام را میخوان کتاب های دیگر را میخوان معتزله را میخوان لکن قرآن از شما که در پیشروش است کلام خداوند رو نمیخوان ترجمهش یاد نداره در قصه هیچ تدبر نمی واظو بازو سی باز ببین میگه نه nee, ملائکه ها غیب میفهمن چطور است چرا هست خی وقتی که ملائکه ها غیب میفهمن خیاکوب علیه السلام غیب میفهمید می می می می می می می و میفهمید بچش چطور 70 در چه خل همه قدر نمیکرد برا بچ خدا چا خب بکشه باز کو غیب میفهمید و غیب میفهمن کار خدا چوب میگیره اینجا با را باز برای یک پیغمبر خدا چی میشه یک اهد میشه نوح علیه السلام بر خداوند به خدای خدا تو گفته بودی که من اهل تو را هلاك نمیکنم بچی من خوازه علم است خدا گفت که و از اهلت نیست. اهلت کازیس که با تو ایمان داشته باشه، با خدا ایمان داشته باشه. ولو که بچه چی تاماس کافر است، اهلت نیست. اینالل نوح الله علیه السلام شما میخوام عزت محمد صلی الله علیه و در وقتی در مشکین خواستن محمد صلی الله و بکشند، به شهادت براسان. خب اونجا دارو ندوات دایر شد و فایسله کردن که مامیری عزت محمد صلی الله چی به شهادت میرسند. حضرت محمد سلام ازمی جلسه از اینا خبر داشت اگر خبر میداش وقت میگروخت ها اینا چرا ده و المبید حضرت علی کرم الله به سر پیغمبر صلی الله و آله استراحت کرد دو ده سا ممکن نبود که حضرت علی بیان به شهادت برسانن اش تنبل بالا نکن ما قهرمانی و شجاعت حضرت علی رو که ببینن که اقتر رسول خدا رو داشت که دا در سرش استراحت کرد اگر عزیزت علی یا عزیزت محمد سلام غیبه می فهمیدن خلاص میفتن افتنان جلسه چی گرفته شده جلسه جلسه مشریکین گرفته شدن و میخوان که ما را به شهادت برسانن وقتی که ما را میخوان به شهادت برسانن چی میکردند کردن در این وقت وقت فرار میکردن ولی اینا قرار بودن بودن بودن تا که خانه محاصره شد بعد از محاصره خانه عزیزت پیغمه سلام برامد و عزیزت علی کرم الله وجهو اونجا در از این استراحت کرد. تمام قصه های قرآنی، تمام احادیث که ما می برای بر ما می که پیغمبر ها و صحابه کرام و اش شخصیت های بزرگ اسلام بشر بودن عزتی که خداوند برشان داده بود. او عزت خداوندی بود که ما برازو احترام می‌کنیم، اما در مسائل که مربوط بغیب خداوند است نمی یک حدیث شریف هست که در حدیث شریف عزت و عمر رضی اللہ تعالیه روایت میکنن میگه که ما یک روزی کتا پیغمبر سلام چش را بدیم در یک مجلسه یک شخص میگه آمد داخل از این مجلس شد خوب مواصفات از این شخص هم میگه میگه شخص دیدم که بسیار ریش سیای تیز داشت کالای سفید خوب اما تو پاک داشت منظور چی است؟ که یعنی ریش رزی سرش گرد و خاک نبود و لباس سفیدش هم میگه بسیار تیز بود یعنی یک نفر که لباس سفید سفر کنه حتماً آثار عرق چهره‌اش تا معلوم میشه میگه حتی مگه هیچ دلی کری از این نفر آثار سفر نبود و میگه دی آثار سفر هم نبود مگه مام ناخته میشه کی, کی هست نگامت راستن پیش پیغمبر صلی الله علیه و شش خب این حدیثه کلگی میخانه ما میخونم توام میخونی وام میخونه لكن انسان وقتی که عقل خود در حدیث استعمال بکنه میفهمه که والله گپ در کجاست میگامد از پیغمبر صلی الله علیه و کرد که مل ایمانو از پیغمبر صلی الله علیه و کرد که ایمان چیست میخواد ایمان را بر یاد بده میگه ما چون عزت و رضي الله تعالی و عزت او بک و صدق و عزت علی و دیگه صحابه کرام و آل بیت پیغمبر اینا مردومایی بودن که به نهایت با ادب بودن و با پیغمبر خدا با وقتی که خود پیغمبر براش اجازه نمیداد گپ نمیزدن یعنی قوت ادب از اونها نشان میدن میگه ما هیچ سوال نکردیم نفرمات شیش ما هیچ پرسان نکردیم که این پیغمبر خدایی ای کیه مونگه در لوده به صد دغه ادب را غی مونگه نپیزانو اوا سفر آثارام هم پیکنستن خب مونگه تو سوالเวล کارون ناصی در و پیغمبر نه پروتنا وک چه رسوله ایمان چدا پیامبر خدا بهش گفت که الایمان و ایمان چی است؟ ان تؤمن بالله و وكتبه ورسله والیوم الاخر. امی اساسات ایمان که ایمان آوردن از به خدا، ایمان آوردن از به ملائکه های خدا، ایمان آوردن از به کتاب های خدا، ایمان آوردن از به پیغمبر های خدا، ایمان آوردن از به اندازه خیر و شر از جانب خداوند است، ایمان داشتن از به روز معاد یا روز قیامت، این اساسات کلش عزت عمر میگه میگه این نفر بر پیغمبر سلام گفت که راست گفتی میگه ما تعجب کردیم هم سوال میکنیم هم توضیح میکنیم اگر نمیفهمیدی چرا سوال کردی اگر میفهمیدی چرا سوال کردی اگر نمیفهمیدی باز تو توضیح میکری و تو باز با پیغمبر میگی که راست گفتی میگه ما تعجب کردیم لکن ادبی که صحابی کرام داشتن میگه ما خاموش بدیم که باش کی هست باز میگه پرسام کرد که مر اسلام و غیر اسلام چی مگه پیغمبرستم باز گفت که اسلام عبارت از است که تو کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله رو بخوانی و اسلام عبارت از است که تو نمازهای پنجگانه را رو بخوانی اسلامی است که تو زکات بدی ماه مبارک رمضان روزه بگیری اگر توانایی داشته باشی به حج بری این اساسات ایمان برشون ای اسلاما برشون گفت خب صدقتم میگه باز باز گفت راست گفتی باز پرسونگت گفت که مال احسان و احسان چی است گفت احسان ان تعبد ربک که تراه تو الله تعالی را تو عبادت بکو مثل که خداوند در چشمهایت می‌بینی فئن لم تكن تراه فانه یراک اگر تو دیدی نه میتانی خداوند خود را می‌بینی پس تو وقتی که عبادت می‌کنی باید با تو فکر باشی که مرا خداوند متعال ذات است که مراقبت می‌کند میگه بلاحرث سوالای شیم قسم در روز دیواری قیامت میگه پاپرسان کس پیغمبران پیغمبران گفت از مکه که تو خوب در نمی‌فهمی باز از علامت های قیامتی ها پرسان کرد خب خلاصه یه حدیث طویل است عزت و مردلاتانو میگه مگه باز این صحابی مبارک مگه این شخص رفت مگه که رفت ما قرار چوب ششیم مگه سلمانوی خدا درداد که فامیل کی کی است میگه ما گفتیم الله و رسول علم عالم خدا و پیغمبرش می ما که رو نش پیغمبر سلام گفت که ای جبریل بود جبرائیل علیه سلام آمده بوده چیره انسان جاکم لیعلمکم دینکم آمده بود تا پر شما دین نشان بدن شما بفاهمید که ایمان چیست اسلام چیست و احسان چیست پس اصحابی که اینجا بودن بدن که در جمله از وقت عزت و مرخیبه میفاهمید نمیفاهمید و ما تعجب کردیم که کی هست بله بازش تعجب کردیم در چهرش که آثار سفر در چهرش نیست هم مسافر، آثار مسافر در وجودش نیست که مسافر باشه و ما هم نمیشناسیمش. بل اخر هم اگ تو پیغام رسان برشون کرد که بله حضرت جبرائیل علیه السلام بود احیانا حضرت جبرائیل علیه السلام در لباس انسان و میگن در چیری یک صحابی بارک به نام دحی بود میگن بعد چری از او حضرت دحی رضی الله تعالی عنه حضرت مامص چند مرتبه پیش آمده بود چند مرتبه جبرائیل علیه السلام پیش آمده بود اما دو قسمت او چند نفر که پیش حضرت ابراهیم علیه السلام بودن مرتبه اول بود نمیشناخت اما ای کتش بلدیت داشت ایناله از احادیثی که بر ما رواید شده و از آیات قرآنی که ما میخوانم مییم که پیغمبر ها غیب هم و وقتی که پیغمبر ها غیب ها نمیفامیدن شاگرده پیغمبر ها و پیروه پیغمبر غیب هم نمیفامیدن آیا جنها غیب میفهمن؟ میفامن اینجا سوال میشه شاید یک کسی باید که والا پیغمبران نمیفهمند ملائکان نمیفهمند میشه که جنا رو بیشون یک کمی بلندتر باشه یا بفهمند لکن باز رجوع میکنیم به قرآن نه از عقل خود خاطر ازی که در مسائلی که مدت سر کس حکم میکنیم که ای غیبه میفهمه یا نمیفهمه اینجا ما صلاحیت نداریم بلکه میریم پس به قرآن بیر قرآن تا قرآن که ال تگو پاک ق اگر خداوند گفت که جن‌ها را مَغایب برشان فاماندهیم میگم صحیح ما مسلمان هستیم قبول داریم اگر گفت گفت که نه نمی باز ما باید بگیم که نمی اگر چون چیزی که ما ایمان و عقیده خدا از کجا میگیریم از قرآن از شان ما نمیتونیم که عقیده خدا از فلسفه بگیریم نمیتونیم تونیم خدا بریم از کتاب افلاطون بگیریم نمیتونیم تونیم بگیریم ماوالسو چی گفته نظر سقراط میگیریم از نظر سقراط ما بگیم ما عقیده خود جور میکنم نه یک مسلمان واقعی عقیده خدا از چی میگیرن قرآن عظیمشان در قرآن عظیمشان در باری در باری جنها چی میگن درباره جنها قصه اوترست که باز هم یک قصه را ذکر میکنم تا ما از این قصه استنباد بکنیم قصه حضرت سلیمان علیه السلام قصه میکنه به امرای کی به امرای جنها چه قصه از قصهش عزت سلیمان علیه السلام گفت خدایا من کسی هستم که دعا میکنم که خدای برای من اتی یک پادشایی بتیست که ای ما با پادشایی دیگرا فرق داشته باشه به هیچ کس نداده باشی تو پادشایی پیغمبر خدایز دعا کرد که برای من یک پادشایی بتید که قبل از مام کس نداشته باشه تو پادشایی و بعد از مام خداوند مطال بایش قبول کرد درست است باده در خدمتش قرار دار باده در خدمتش قرار دار و جنها را همگو فیان در خدمتی تو این دو چیز دو مخلوق هست جنها و باد اردوش در خدمت تو تکنولوژی معاصر کلش سر باد میچرخه تایرام که پرواز میکنه هوا را قطع میکنه بلاخره پرواز میکنه اگر موتر هم عرکت میکنه مجبور است تایراش با هوا باشه اگر بایسیکل از باید در هوا باشه اگر ای باشه اگر ای باشه کل تکنولوژی سر این باد میچله خداوند مطالبرش گفت خلاصه یک تکنولوژی در خدمته دیگه چی گفت گفت خالا ما مشکل انجینیرها داریم ما پانزه انجینیری چندان فارغی نداره که که بر ما کار بکنه گفت خلاصه از مسئولین د کلش دکترا داره ده دا اینجین یری دوت خداوند مطالبرش جناس های فاهمتنو کار کرده میرین یعمرون لحو مایشا و من محاریب و تماثیله و جفان کل جوابی و قدورین گفت تمام وسائل که عزت سلایمان علیه سلام چیزهای را که بیخواست سلایمان علیه سلام کل چیزه برش جور میکرد اگر میگفت برای ما یک دیک جور کو دیدی دیگه ما بتونیم مثلا شازادانه گهوا یک جایی قورما کنیم شاید شما جور کردن نتونین اما برای جنها ها مشکل نیست برای کار میکردن بالاخره جن ها کله عظمت میکشیدن و کار میکردن یک روز سلیمان علیه السلام گفت که آمد ده دا قصر خود قصر جور کردن دیگه انجینرای جن از دیگه قصر صاحب جور کردن که قصه بلقیس اگه بخواید که وام ایران منده بود وقتی که سلیمان سری قصد جور کرد داخل قصد خود شد برای نفر خود گفت گفت که در دروازه باش و هیچ کس را اجازه نمیتی که داخل شد خلاص می میخواهیم که دباری چیز فکر بکنم حضرت سلیمان صاحب که داخل شد خوبی جریان قصه شما میتونین که بخواهیم از خلال قرآن شریف ذکر شده صلی اللہ علیه السلام به شکل روحی ازی قبض شد که استاده سر خود در سر حاسای خود ماند در سر حاسا سر خودمان و دو پایش است. روحش قبض شد روحش که قبض شد جنها می این از پشت کلکین سهل میکنن کنن گفته بود که تا که من خودم نبر کس حق نداره که دروازه را باز کنه یا بیاید. سایه دروازه از بیرون بسته است و نفر پیرا دارم بر شان میگه که کس داخل شده نمیتونه. یگان جنک از کلکین سایل میکنه. چی گپاست؟ میگه فکر میکنه. هی سیل ثینکینگ. یعنی او صاحب چی میکنه؟ فکر میکنه. بعضی جنک دیگه رو میگه میکنه که تو برو ببین چی گپاست؟ سر میکنه که او استاد است. میگه کنوزم چی است؟ چرتنه. سلیمان علیه السلام وقت رو شده و رفتند. وطنان جسدش است لکن جنها قرار نفسشان برامد او برادر ما اینجنیرهای جن خود تا سات کار میکنیم ایخ پنج شد شش شد هف شد رخصتی کار کار داریم مگه نه نه نه سلیمان علیه السلام گفته که تا که من خودم نبرامدیم رخصتی هم خودش میده تا که من نبرامدیم کار کنیم ساییم نفس از یا برامد خواه بلاخره چی شد؟ خوب دقیق شد که جنها غیبه می اگر مردم افغانستان قرآن عزیم و شان هم آیا پیشی فالبینا و جادوگرها میرفتن؟ رفتن؟ نمی خوانه. قرآن نبایی قرآن چه کهی؟ قرآن فقط شام لندن پوکر تکهی؟ بلورتا شام پاریس پوکر تکهی؟ بلورتا گاش بخمال ارتا پوکر تکهی که نه؟ بلورتا وای چیز بجارو کم دیارتونه سوال خدایی تا نکمیشون که بابا تا که که بابا بایی که زور میرسیده تا به میزان تا نکا کول در سره خدایی تا خرقا که تو کمرگل در طول عقیده هم دقیقه دمت در, در خرابه خود در خود دمان خرابه ای؟ پوش دکه دمان خود تجارت که ای؟ او در بیاخل خلق بیاخل عقیده لسیان عقلی در دمان خراب کرد. مگه من جارو میکنم زیارتاره قمرگل میگم بطور و زلفو گتمویای خود شینتی بابا یک کاکاگک هست خرد سوز که میقابل به خدای عز و جل ذات رحمان رحیم ذاتی که تمام صفاتش هست ذاتی که می که ازا سألك عبادی عنی فا اینی قریب وقتی که بنده های مده مورده مپرسان بکنه مورده خود چیستم؟ نزدیک. قریب نزدیک استم اجیب بود دعوت دا میگم منستم که اجابت میکنم دعای دعا, دعا, دعا کنیده ها را فلی استجابه بلوی مردم شما اجابت کنید احکام مره و ما ذات خداوند ذات رحمان رحیم است خدا را نمشناستم این حضرت این جنها قرار بیرون منتظر منتظر منتظر نفسشان برامد کار کده کار کردم مرس بلاخره میگه ما دله همه علا موتیهی الا دا بتال ارد تأکل و منسعته مگه هیچ کس از مرگ سلای محلی ایار خبر ندار مگر یک کس موری و نگکاست که یا چوبه میخورن میگه دوبتل اینا خود فکر که این موریانه است کجا کجا آمد آیسای سایس آیسایس فکر کرد که این از این دونیزی حرکت کرد تا که آمد سابید در فلسطین رسید باز بالاخره رفت باز خورد و باز ایچو و خرد و خرد و خرد و خرد تا که ایچو آسای سلیمان علیه السلام شکست موریانه که خود شکست و سلیمان علیه السلام غرم در روی زمین افتاد ما دل آیت قرآن از برادر میگه ما دلهم الا موته دلهم دل برجل خبر نداد تیره جنها را علامه و بچی به مرگ سلیمان علیه سلام میگه یا خودشان خبر نداشت قلعه بوده مردم بدن جنها فهمیده؟ این جنهای خدر به خبر و به چیز بدن که پشت دیوال نمی میگه از یا کدن موریانگک خوب بود از جنها کدن موریانه علمش زیاد بود او آمد اثار خورد سلیمان سلام السلام که میگه وقتی افتاد مادل لهم موتی میگه برای جنها خبر نداد با مرگش الا دابت الارد مگر اونمو موریا نگک دابه جنبنده را میگن اونمو جنبنده که تأکل من سعته من سعته در زبان عربی عصار میگه میگن سلیمان سلیمان فلم ما خره وقتی که سقطه خره با مانای سقطه در زبان عربی میگه وقتی که سلیمان علیه السلام سقود کرد تبینت الجنو سه که های چه قرانشه میگن میگه جنها فامیدن که اندهو لوکانو یعلمون الغیبه گفت او جنها اگر ما شما غیبه میفامیدیم ما لبی صفه العذاب المهین فامیدن که اگر ما غیبه میفامیدیم به این عذاب ما تیر کردیم. شاید بعضی جنهای جنهای دیگر هم بازی داده بدن ها؟ با برشان گفتن که ما غیبه میفامیدیم امروز رسوا شد کلش کل فالبینا و طاویزگره و جادوگره و کل ازی چی شدن؟ رسوا شدن آه کلگی اگه فامید که شما که میفتین ما غیبا میفامیدیم این چه سلیمان علیه ایناله مشکل ما مفسرین امروزی چی از عقب مانده مفسرین عقب مانده یه که از یقیده خدا بگیره یکی شروع کده که آسای سلیمان سلم چند متر بود موازی قرآن قطر رو برداشتید دیگه گفت "قطر چی بود؟" دیگه گفته بود که مستطیل شکل بود یا مربع بود. باز دیگه گفتم نه مستطیل واره بود. باز گفته بود خب وقتی که مستطیل از خیلی مساحتش چی بود؟ باز می از تو طول و از در کو باز نتیجه چی میشن؟ مساحتشام معلوم می‌کنی چوب چوب چوب چوب چی بود؟ گفتی از چوب بود گفت نه بود. گفت بود نه ارحال ای مردم ها عقیده رو یاد میگیرن؟ دیگر کسی صاحب شروع کردی قصد سلیمان صاحب چه خصم بود چند تا کلکین داشت؟ ارحال قرآن ایوازی که درس عقیده بگیرن؟ دوی قسمات که خداوند میگه چرا فکر نمیکنین چرا اخرتون رو در کار چرا از از قرآن نمیگیرین یا صاحب آمدن صاحب کتابای کک ککنو شکرده و صاحب 40 جلد دست دیگه رو ببینین 50 جلد افتخار است که من صاحب خونده شکر کردم لکن كل وقتی که بخونی گفت سرزمینی است که چوب چه قدر بود یا چقدر چه, چه قسم بوده فلان وقت زیگر. اما ما و شما مسلمان های کرن وقتی که قرآن و چی استنبات میکنیم که جنها غیبه نامی فرمیدن خلاصش جنها غیبه نامی بنان ملاکیا غایب نامی فرمیدن پایگان برا غایب نامی جنها غایب نامی غیبی که مخصوص ذات خدای عزوجل است کی میفهمه؟ خدا. خود خداوند جل جلاله و ذات الله جل جلاله. این یک سوال دیگه پیدا میشه که خب این بعضی کسا هستن که میرن پیش فالبینا ها و برادرای عزیز گفت خطرناکی است مادرای اولادایتون رو بفهمونیم. مشکل اساسی که جا پیدا میشه؟ که بعضی کسا هستن ادعای غیب میکنن. بعضی کسا ادعای چی میکنن؟ ادعای غیب میکنن اینال این که ادعای غیب میکنن و پش فالبینا میرن صحیح است هی؟ پش فالبینا میرن اینال در اینجا پیغمبر خدسی سلام چی میگه؟ میگه سه قسم مردم هست که پش فالبینا میرن یک قسم مردم هست پش فالبین میرن یک قسم از این. پش فالبین میرن خاطر از اینکه که مباردون باش پش فالبین بیبینوم که این فالبین چی دروغ های میگه تا دروغ بر مردم کشف کنم به این نیت اگر پش فالبین میری که دروغ هایش کشف کنی پراorarولم نیست مشکل نیست اما یک کس دگی از پش فالبین میره یک کس دگی از پش فالبین میره تو چرا پیش فالبین رفتی؟ اینجا در حدیث شریف سکنید که اگر این حدیث شریف رو بخانیم در صفحه 155 کتاب بین اسلامی در یا 6 حدیث متن رویش است من برطان یک حدیث شریف است که میگه اگر کس پیش فالبین بره فقط پیش فالبین بره فال خدا ببینه چه روز عبادت شد خدای پاک قبول نمیکنه سعی کنین. حدیث 4137 است که ایره امام مسلم روایت کرده میگه ان صفیتا میگه بی صفیتا میگه عن بعد ازواج نبی صلی اللہ علیه و سلم میگه بعد از ازواج پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ قال من اتعرفن فسعله انشای این اگر میگه یک کس پیش یک فالبین و جادوگر میره و او رو درباره یک چیز سوال میکنه که تو رویه که تالیم خب بی یا مگه تو خامی این کمسایگای کای تا پر تو که ما چی مشکل دارم یا مگه بیادرم گم شده امیر خود تو پیدا کو بگو تا کجاست یا تو برام بگو که من مثلا چند تا اولاد می داشته باشم یا مثل اون دو وارو تو برام بگو که تاریخ ازدواج ما چه وقت است این کلش کارای که اون دو اونم فالبینا میکنن اناله پیغمبر صلی الله علیه چی میگم؟ میگه اگر کس پیشیناما یک جادوگر یا فالبین رفت و این نمی میکنه از پیشش که من چند اولاد نداشته باشم تو بگی ستاره من را تغییر بته تو ستاره من افتابیست میگه بر ستاره در محتابی جور میکنم ستاره تو آتیشیست من برد عوی میسازم سهیست نی؟ میگه نه میگه؟ میگه میگه وقتی که یک کس پشی اینمی نفر میره من حتی عرافن ایره دزبان عریب میگه عراف میگن میگه کس بشه از این رفت فساله گوانشه این لم تقبله 40 ا میگه چهل شب که نماز بخونه خدا قبول نمیکنه چهل شب آن روز نماز ازی باطل میشه فقط با رفتن پیش فالبین و باز ذا حدیث شریف دیگه چی میگم میگم عن ابي هريره تا سعی کردم مسند امام احمد حدیث نمبر 9171 است حضرت ابي هريره و الحسن و حضرت حسن رضی الله تعالی عنهما اردوشن روایت میکنن، این نبی صلی الله علیه وسلم میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم چی گفت؟ من اتا کاهنن. میای یک نفر بیار پیش اکاهن، پشی ن مردمایی که فال میبینن و جادوگری میکنن و این چیزای غیب اداره میکنن. یا آر رافلی نمی مردمایی فال بیاب یا؟ فصداکه هو رو تصدیق بکرده. پیشتر اون نفر رفته بود تنها پیشش تصدیق نکرده بود. ورس فهم که فال مرا بیبی. اما تصدیق نکرد. پس آمد گفت خدا رو دروغ میگه چی میگه سر و خود گفت پازد میگه اما اگر پیش از این رفت فصدقه به ما یقول باز گفت که والا برادر من رفتم پیش فلانی نفر برای ما گفت که تو چار تا بچه خالیت میشه برای ما گفت که دشمن تو فلانی هست برای ما گفت اینی کار است باز میگه فصدقه باز این رفت تصدیق کرد گفت که گفت والله راست, راست گفت. اقراص میگه که هیچ دیگه نمیگه فش یک سخنش هم غلط نیست. میگه این حکمه چی است؟ دیگه میگه که فقط کفر به فقط کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم میگه این با بالای آن چیزی که بالای با آن چیزی که بالای محمد صلی, ای با بالای محمد صلی نازل شده این کافر شده است بنا بالا محمد صلی الله نازل شده بود؟ قرآن است. میگه با قرآن کافر شد به خاطر چی به خاطر ازی که یک انسان دروغگو و فالبین و جادوگر در چیزی که خدا گفته که نمی‌فهمه اراچی کردن کرد. رئیسایب در وقت آمدن نواغرفتن این مدیریت بازی نخوری یک کلوشکس نسازیست میخوای خدا به خودم نشان بتایی آ رئیسایب خودا بسیار متصوب نشان بتای رئیسایب ازدهات آدم بخیل است باور که دودم روی رفتم کلار روی خودا بث بست رئیسایب او چی میکنی قصد داره که رئیس شو. بابا این دکه هم رایی مدیر سای بای مخترم اگر شده نمیتانه مزیریتی خود خود میکنه دیری که گره؟ یا دلیل نداشت یا گتلیل میدوش، تو اینجا میوَم؟ خوین خایف از دیگر، فقط فکر کو رایسه. آخر میش نشه زیاد بگیرین. شونسه. می‌فیشه شما با غیبت کردنتان تمام اعمال نیکتون بر برم روان می‌کنین. من می خورما رو آوردم که بخورین. هنوز زیادتر انرژی بگیرین. و غیبت بیشتر بکنین. وریث شما هم با گوش کردن به گپای از اینا و به ای غیبت ها خودم در این گناه شریک شما هم بخورین تا که شما انرژی گرفتن انوز زیادتر به گپای از یک گوش بگیریم سعی کنیم مگه در دهی منطقی پنجاب که خوب مگه برد مگه که پچاس روپه دیدو یک جادوگری که چال لیلو مگه پینجار پیه باتی؟ یک چال جادوگری برات یاد میتون در پینجار پیه این حال اونوز یکانه که میرن در پنجاب یک پنجاب، چال جادوگری یاد میگیرن نه در افغانستان و اینجا قرار اون مردومای بی و کسایی که از قرآن بی‌خبر هستن اینیارا کلشونو گمراه می‌سازه. این نفر میگه میگه ما رفتم میگه ما رفتم استاد یک دو سه چاله یاد گرفتم. چاله بر ما رفتم که چاله هم یاد بده گفتم ما خاطر از زیاد میهم که برای مؤصلینت قصه کو. تا که اون ابو که اصل گرد در کجاستی جادوگرا از چی استفاده میکنن. گفت یکی از چالهای های است که مثلا یک کس وقتی که میره یگان نفرک داره در اون کوچه ی آدمو بیرون خود پرسارش میکنی به بیدارک خوراک بر چی آمدی؟ میگه والا این فلانی بختم وابسته کرده و فلانی ما اینی کار کرده و این کارو کرده این نفر میگه خب کی باشه؟ میگه والا او تو یک زن یوارم است چی نام داره زن یوار چاکو کونام داره دیگه کی است دیگه مثلا چی هست یک خسربوری بیادارم از او چی نام داره او تورگل نام داره دگه صاحب ودگیش چی نام داره؟ خب بالاخره اینمی چی هست؟ چی نام داره؟ دگه چمن نام داره. سای بودگیش هست دگه جمعه نام داره. دگه صاحب چهارشنبه خان نام داره. ارال ای میگه این مردکه ایزان میگه رفت پیش ازی پیش ازی که میری مردکه وقت برشو نفر خبر داده که از جمله کار قاره یا کی فلانی و فلانی و فلانی فلانیست فلانی این برش وقته که چیز میکنن فورا اون وردکه میگه چی میکنن؟ واجل گفت آ امی فالوین برام میگه یاد داد که تو آجیل چیکو وقتی کو برنامه فرمادی آورد تلفونی یکوسکالک میتبرد میگه که ازت خودگیش فلانی فلانی اسماست این سه مثلا یاداش گرفت شاکوکو دیدی که تچونو شمع میکنه در روی ورق در روی ورق میگه امرای شم سفید امرای شم سفید در روی ورق میکنه وقتی که نفر آمد برش میگه که بخون این ورق چیزه است اینکه میکنه یه ای چیز نیست سفید است این مردک‌ها وحزیر که یک کاسه دیگه میگیره، داخل این کاسه چی پر کرده؟ آتش است. دیگه اسپند است و بوربوس و فلانی رو دود کده میره و اسپند است و بالا باز این گپا رو کنده. علی خواغ است، خواسنی؟ اینا فرام میگه ساک بهادر. تو من تا فکرت باشه اینا تک یه چیز نشه است؟ میبینی چیز نه نمیبینی؟ میگه خب باش سروش میبینی چیزا نه؟ میگه خلاص فکرت باشه که اینا الی تو دشمناتو پیدا میکنم من جادوی دمه میکشم این جادوی تو ده کجاست خب من نیازمه دشمناتو هم برات پیدا میکنم خود خب دشمنم چی است دشمن صاحب نگا که عینم وب پیدا میکنم این صاحب برش میگنه که این یک ای قسمی قسم میگنه و خزیر آتش است نه باز میپره که باز کار کرکبیل که جرجبیل که خرخبیل این مردکه بالاخره میگه خب یار اینالو بخون چی است این وقتی که سن میکنه اوه چهار چورشنبه گل <تصفيق> صاحب azi بیچاره میره و چورشنبه گل بیچاره یا, جا... یا جوالیست یا مثلا کارگر است یا بیچاره بیچاره است این صاحب azi میاد دادا جاستینو را صاحب برمیزونه که تو تو سر ما جادو کردی شاید دو از مرگ خودم غولن میگه بهدار برات چیز نگوی زیاد تن نگاه کنی چیزای تو را ما ببینیم حتی اگر افغانی ما ما در ایران رفته بود خودو قصه کرد گفت که ما رفتیمک در ایران هر کار پلیسیم کار نبود کاری که ما بکنیم گابلو باز ما دو نفر رفتیم که یکی ما یک دانه چارپایی رو چط بسته کردیم این گفتم گفتیم تو دمی چط خوکو دده سزو چیز داده بودم دده سزو یک دانه دنبره چند تا ملک داده بودم این زده بودم این کنجا شیش چه بوده گفتم که خواه این حال سکتیم که میپالم که میپالم که میپالم که میپالم خودا زود او ماشاتم بالا اینه که مردک یه گاو با جون این الان من تابیزت رو میکشم انال برایت تو را تو را جادو کردن چی کردن تو را میخاره چخ کردن سنجاق قصیات سلانش یکی بود بتس خلا بالا میکنه بازم مزک برشد بالا می ده راست میگه اینو یافته میشه دست بگیره یکی سایه میگیره میگه لایره برو ددک جوی چیزی میخاشه بکشه بکشه این بیچاره فکر میکنه که خب خب تورگل خان کاکا ما سره <تصفيق> تا سرا تزلم چه تا میدار تا کرده بین از یاد دشمنی میخده این رو لط میکنه کل نتیجه چیست که این انسان چی کرده یک جادوگر د در غیب خداوند چی کرده شریک به خودش خود مشرک شد بیدین شد گمراه شد به قرآن کافر شد اونو مسلمان دیگر هم کتش دشمنی هست عزی خاطر ب ب بدیه رفتن پیش از فالبین ها و جادوگر ها و یا اینمی که یا اکثریت از یا اکثرا باور بکنین که آخری گفت بر میگم که درس ختم میکنیم میگه که برادر یک روز من در دشت دیدم یک نفر فالبین جادوگر توبه کرده بود در تلویزیون دوبای خود این نفر آمد توبه کرد و اینجا چند نفر علمه ها ششته که تزیده میسر میز و ایره تلقین کردن مثل که یک کافر نو چی بخانه؟ قلیمه. قلیمه بخانه. وارج گفتن که بخوان لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت الله الا اله الا الله مثل که یگوندو نو مسلمان شوه باز بالاخره نتا اخیره پرسان کردیم از علما را گفت که چرا بازی خودش زیر پرسان کرد که تو چرا کلمه خانی تو خود تقریبا بر کل یی میگفتی که خود عالم هستی و مولوی هستی و چطور هستی و چنان هستی یکو برادر گفت ما اینمی بیست سال که جادوگری میکردم هر شب از 12 تا یک شب بر یک ساعت بر شیطان سجده میکردم چرا که جادوگر تا وقتی که کافر نشه او شیطان برای زیگ گپا را نمیاره بسیاری چیز ما تو غیب فکر میکنیم مثلا خود دیروز ساعت دو بجه کتی یک دوست رفتی خیرخانه واده خیرخانه در اتاق ششتی درس خواندن، قصه کردین گفت زدین خود خودت ازی دوست، دوستت اینال این قصه من هم میفهم. این نفر دیگه نمیفهمم لکن امرای تو جن هست شیطان های جنی هست پس اینالو اون شیطان جنی تو میه برازی جادوگر برای شیطان هزی قسم میکنن که این دیرو سات دو بجه خیرخانه رفته بود در فلانی اتاق بود اینی چای خورد کت از اینی خود اینی اینی گفاره گفت تو می به جزی جادوگر که جادوگر خود غیب خورد نشد دیگه تو که گفه گفتی؟ و ایده بیختم خبر داره و ایده بیختو قصه‌نامی کنه اما شیطانی که امرای تو هست این شیطان آمد بر این شیطان از این قصه کرد اما اگر قیدش ضعیف باشه چی میگه اوه کلی گپای خا گفت ای خو راست گفت ای خو مردک چیست؟ اینال فورا الان فوراً در این یک کلمه گپ خدا چی ساخت کافر ساخت بنام خداوند متعال جل جلو و جلو شما رو توفیق بده که از کفر از شرکت بیماری خود نگاه